مصنوی معنوی مولوی برنامه 161 رجوع کردن به حکایت آن شخص وام کرده و آمدن او به امید عنایت آن محتسب سوی تبریز آن غریب ممتحن از بیم وام در ره آمد سوی آن دار و سلام شد سوی تبریز و کوی گلستان خفته امیدش فراز گلستان زد زدارالملک تبریز سنی بر امیدش روشنی بر روشنی جانش خندان شد از آن روزه رجال از نسیم یوسفو مصر وسال گفت یا هادی انخلی ناقتي جا اسعادی، و تارت فاقتی. يا یا ناقتی تاب الامور، ان تبریزن مناخات و صدور. يا یا ناقتی حول الریاز، ان تبریزن لنا، نعم المفاز ساربانا بار بگشا زشتران شهر تبریز است و کوی گلستان فر فرداس است این پالیز را شعشع عرش است این تبریز را هر زمان فوج روهنگیز جان از فراز عرش بر تبریزیان چون وساق محتسب جست آن غریب خلق گفتندش که بگذشت آن حبیب او پریر از دار دنیا نقل کرد مرد و زن از واقع او روی زر. رفت آن تاووس عرشی سوی عرش چون رسید از حاطفانش بوی عرش سایه گرچه پناه خلق بود در نوردید آفتابش زود زود راند او کشتی از این ساحل پریر گشته بود آن خاج از این غمخانه سیر نعره زد مرد و بی هوش افتاد یا اونیز او نیز در پی جان بداد پس گلاب و آب بر رویش زدند همراهان بر حالتش گریان شدند تا به شب بی بود و بعد از آن نیم مرده بازگشت از غیب جان با خبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب و از دخوار او از اعتماد بر مخلوق و تعویل بر عطای مخلوق و یاد نعمتهای حق کردنش و عنابت به حق از جرم خود ثم الذین کفرو بربهم ربهم یعدلون چون بههوش آمد بگفت ای کردگار مجرمم بودم به خلق امیدوار گرچه خاجه بس سخاوت کرده بود هیچ آن کف و عطای تو نبود او کله بخشید و تو سر پرخرد او قبا بخشید و تو بالا و قد او زرم داد و تو دست زرشمار او سطورم داد و تو عقل سوار. خاجه شمم داد و تو چشم قریر خواجه نقلم داد و تو تو پذیر. او وظیفه داد و تو عمر و حیات وعده زر وعده تو طیبات او وساقم داد و تو چرخ و زمین در وساقت او و سد چون او سمین زر ازان توست زر او نافرید نان از آن توست، نانش از تو رسید. آن سخاب و رحم هم تو دادیش، که از می فزودی شادیش. من مرو را قبله خود ساختم، قبله ساز اصل را انداختم. ما کجا بودیم کان دیان دین عقل می کارید در آب و تین چون همه کرد از عدم گردون پدید وین این به سات خاک را می گسترید زختران می ساخت او مسباح ها و از تبایع قفل با مفتاح ها ای بسا بنیاد ها پنهان و فاش مزمر این سقف کرد و این فراش، آدم استرلاب اوصاف اولوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. هرچه در می نماید، عکس اوست، همچو عکس ما اندر آب جوست. بر سترلابش نقوش انکبوت، بهر اوصاف ازل دارد سبود. دازه چرخ غیب و از خورشید روح انکبوتش درس گوید از شروح. انکبوت و این سطرلاب رشاد بی منجم در کف آم افتاد. انبیا را داد حق تنجیم این غیب را چشم بباید غیب بین. در چه دنیا فتادند این قرون عکس خود را دید هر یک چه درون؟ از برون آن چه در چهت چه نمود ورنه آن شیری که در چه شد فرود برد خرگوشش از ره کیفلان در تگ چاه است آن شیر جیان در روان در چه کی وی بکش؟ چون از او غالب دری سر بر کنش. آن مقلد سخرای خرگوش شد، از خیال خیشتن پرجوش شد. او نگفت این نقش داده آب نیست، این بجز تقلیب آن قلاب نیست. تو هم از دشمن چو کی نی می کشی. ای زبون شش غلط در هر ششی آن اداوت اندر و عکس حق است که صفات قهر آنجا مشتق است وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست خلق زشتت اندرو رعیت نمود که تو او صفحه آینه بود. چونکه که خیش دیدی ای حسن اندر آینه بر آینه مزن. می زند بر آب استاره سنی خاک تو بر عکس اختر می زنی. هین ستاره نس در آب آمده است تا کند او سعد ما را زیر دست خاک استیلا بریزی بر سرش چون که پنداری ز شبها اخترش عکس پنهان گشت و اندر غیب راند تو گمان بردی که آن اختر نماند آن ستاره نهست هستن در سما هم بدان سو بایدش کردن دبا بلکه باید دل سوی بیسوی باشد. بست نهس این سو عکس نحس بی سو است داد داد حق شناس و بخششش. عکس آن داده هستن در پنج و شش گربود بود داد خسان، افزون زرگ، تو بمیری وان بماند مردرگ. عکس آخر چند پاید در نظر، اصل بینی پیشه کن، ای کجنگر، حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز، با عطا بخشیدشان عمر دراز، خالدین شد نعمت و منعم علیه محی الموتاست فج تاز و علی. داد حق با تو درامی چو جان آنچنان که آن تو باشی و با تو آن. گر نماند اشتهای نان آب بدهدت به این دو قوت مستتاب فربهی رفت حق در لاغری فربهی پنهانت بخشد آنسری چون پری را قوت از بو میدهد هر ملک را قوت جان او میدهد جان چه باشد که تو سازی زو سند حق به عشق خیش زندت می کند زو حیات عشق خواهو جان مخواه تو از او آن رزق خواهو نان مخواه خلق را چون آبدان صاف و زلال اندران تابان صفات زلجلال علمشان و عدلشان و لطفشان چون ستاره چرخ در آب روان پادشاهان مظهر شاهی حق فازلان مرآت آگاهی حق قرنها بگذشت و این قرن نویست ماه آن ماه است آب آن آب نیست عدل آن عدل است فاضل، آن فضل هم لیک مستبدل شد آن قرن و امم قرنها بر قرنها رفت ای همام و این معانی بر و بر دوام آب مبدل شد در این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر بر قرار. پس بنایش نیست بر آب روان، بلکه بر اقطار عرض آسمان. این صفت چون نجوم معنوی است، دان که بر چرخ معانی مستوی است. خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. هم به اصل خود رود این خد و خال دایمان در آب ماند خیال جمله تصویرات عکس آب جوست چون به چشم خود خود جمله اوست باز عقلش گفت بگذارین حول خل دوشاب است و دوشاب است خل خاجه را چون غیر گفتی از قصور شرم دار ای احول از شاه غیور را که در است از اثیر جنس این موشان تاریکی مگیر خاجرا جان بین مبین جسم گران مغز بین او را مبینش استخان خاجه را از چشم ابلیس لعین منگر و نسبت مکن او را بتین همراه خورشید را شب پر مخان آنکه او مسجود شد ساجد مدان عکس ها را ماندین ندین عکس نیست در مثال عکس حق بنمودنیست. آفتاب دید او جامد نماند. روغن گل روغن کنجد نماند. چون ما گشتند ابدال حق نیستند از خلق برگردان ورق قبله وحدانیت دو چون بود. خاک مسجود ملایک چون شود چون در این جو دید عکس سیب مرد دامنش را دید آن پرسیب کرد آنچه در جو دید کی باشد خیال چونکه شد از دیدنش پر صد جوال تن و آن مکن کن بکم سم کذب و بل لما جاءهم ما رميت احمد بوده است دیدن او دیدن خالق شده است خدمت او خدمت حق کردن است روز دیدن دیدن این روزن است خاصه این روزن درخشان از خود است نیوده ای آفتاب و فرقد است هم از آن خورشید زد بر روزنه لیک از راه و سوی معهود نه در میان شمس و این روزن رهی هست روزنها نشد زو آگهه تا اگر ابری براید چرخ پوش در این روزن بود نورش جوش. غیر راه این هوا و ششجهت در میان روزن و خور معلفت مدهت و تسبیح او تسبیح حق. می و می روید زعین این طبق. سیب زین سبت، خوش لخت لخت عیب نبود گرنهی نامش درخت این سبد را تو درخت سیب خان که میان هر دو راه آمد نهان آنچه روید از درخت بارور زین سبد روید همان نو از ثمر پس سبد را تو درخت بخت بین، زیر سای این سبد خوش می نشین. نان چو اطلاق ورند، ای مهربان نون چرا می گوییش محموده خان. خاک ره چون چشم روشن کرد و جان، خاک او را سرما بین و سرمدان؟ چون زروی این زمین تابد بد شروق من چرا بالا کنم رو در عیوق شد فنا هستش مخان ای چشم شوخ در چنین جو خشک کی ماند کلوخ پیش این خورشید کی تا بد هلال با چنان رستم چه باشد زور زال طالب است و غالب استان کردگار تازه هستی ها برارد او دمار دو مگو و دو و دو مخان بنده را در خاجه خود مردن خواجه هم در نور خواجه آفرین فانی استو مرده و مات و دفین چون جدا بینی ز حق این خاجه را گم کنی هم متن و هم دیباچرا چشم و دل را این گزاره کن ز تین این یکی قبله است دو قبله مبین چون دو دیدی ماندی از هر دو طرف آتش در خف فتاد و رفت خف مثل دوبین همچو آن غریب شهر کاش عمر نام که از یک دکانش به سبب این به آن دکان دیگر حواله کرد و او فهم نکرد که همه دکان یکی در این معنی که به عمر نان نفروشند جا تدارک کنم که من غلط کردم نامم عمر نیست چون بدین دکان توبه و تدارک کنم، نان یابم از همه دکانهای این شهر و اگر به تدارک همچنین نام باشم، از این دکان درگذرم، محرومم و احولم و این دکانها را از هم جدا دانستم گر عمر نامی تو اندر شهر کاش کس به نفروشد بسد دانگت لباش چون به یک دکان بگفتی عمرم این عمر را نان فروشید از کرم او بگوید رو بدان دیگر دکان زان یکینان به از این پنجاه نان گر نبودی و اندر نظر او بگفتی نیست دکان دگر پس زدی اشراق آن نا بر دل کاشی شدی عمر علی این از اینجا گویدان خباز را این عمر را نان فروش ای نان با چون شنید او هم عمر نان درکشید پس فرستادت به با دکان بعید کین عمر را نان ده ای انباز من راز یعنی فهم کن زاواز من او همت و حواله می کند هین عمر آمد که تا بر نان زند چون با یک دکان عمر بودی برو در همه کاشان زنان محروم شو. ور با یک دکان علی گفتی بگیر نان از اینجا به حوالو به زهیر. احوال دوبین چو بیبر شد زنوش، احوال دهبینی ای مادر فروش، اندر این کاشان خاک از احوالی چون عمر می گرد چون نبوی علی هست احوال را در این ویرانه دایر گوشه گوشه نقل نو ای ثم خیر ورد و چشم حق شناس آمد را دوست پر بین ارسای هر دو سرا وارهی از حوال جا بجا اندر این کاشان پرخوف و رجا اندر این جو غنچه دی دی یا شجر همچو هر جو تو خیالش زن مبر که تو را از عین این عکس نقوش حق حقیقت گردد و میوفروش چشم از این آب از حوال هر می شود عکس می بیند سبت پر می شود پس به معنی باغ باشد این نه آب پس مشو اوریان چو بلقیس از هبا. بار گونا گومست بر پشت خران هین به یک چوب این خران را تو مران بر یکی خر بار لعل و گوهر است بر یکی خر بار سنگ و مرمر است بر همه جوها تو این حکمت مران اندر این جو ماه بین عکسش مخان، آب خزر است، این نه آب دام و دد، هرچه نماید، حق بود. زین تگه جو ماه گوید من مهم، من نه اکسم، هم حدیث و همرهم، اندر این جو آنچه چه بربالاست، هست خواه بالا خواه در دست از دگر جوها مگیر این جوی را ماه دان این پرتو محروی را این سخن پایان ندارد آن غریب بس گریست از درد خاجه شد کعیب برنامه های مصنوی معنوی مولوی را می و و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.